نزداری و صحابت اللهم و یه به بخش اصول رسیده بود و تقریب به اصول بود یکی دو تا مطلب اول این که بارد داره بخش بشیم به عنوان به هیچ ما را به میج برای بحث اصول بشیم چون در بحث اصول ماجر مرحوم استاد در اینجا که در اول تقسیم مباحث اصوله ایشان نه منش انا ایشان در این اول خیلی به این تقسیم بندی که مرحوم شیخ راجع به حصول دارن متعرض نشدن اما در مرحله اول پراعه متعرض این مرحص شده البته در اول پراعه به حصول این چافه از مصباح و حصول شماره تساسور ایشان شده هفته اما جلد اول جلد دوم و مصباح چون مصباح اصول دو و سه داره شاید یکم به حصول شده پیشون در اینجا چون ما مفصل متعرض شدیدیم و میخواه متعرض احوال بشیم در امره اول که صفحه 285 یک تقسیم بلی شبیه اون کلامی که ما حرز کردیم راجع به احوال سو اصول متعرض شدن که در این صفحه یعنی پنج رسمش کردن به قول خودشون یهاده یه مسائل علم و اصول از محل اجماع حالا شان که شما تحلیشم به احترام میشون میکنیم ملحظه با معلومی شدیم نباحثیشان را قبول ندونیم اجام نشید در این شاعتم هستش سندر طفیه این این طفیه چل این طفیه این هم دیگر این مصالح اصولی سنتش ما الى اقسام به سرر مایوسه من الکون شرعی در مثل بحث از ملازم بین وجودش وجود بین وجودش و حرمت زده. این ایشون گواهی ان که مایوسه الکون شرعی در بحث اسم گواون رو مایوسنا الکون شرعی به اطلاق به تحباست تحبیر خودیشان بعد این هم سه کردن هم که یک قسم دوم میشه پس سوم یکی که در باشه مثل مقای که کرد مثل همزهور در روز در نوع سرون که در نوع دوم که قسم سوم میشه بسی باشه قسم چهاران مالای روسیان همه حکم واقعی در قطع الویزانه و لاب که اسم اصول عملی ازن هر بله قسم پنجم مابو حسفی انقواذ به کثرت تعین الوضیفۃ الفلسیه عند العقل ما یعنی اون قسم چهارم رو اصول شرعی قرار پنجمه منجمان اصول عقلی این تفسیری است که ایشون فرمان این مسائل علم سوال و الاصول عن ایشان در تقسیم ابحاصل الوصول پنج نوه به این نهره هستم اما بایش به نظر ما خیلی ترگوی که ایشون خرمده خیلی واضح به نظر ما هرز که که برسردون ما راجع به حقیقت اعتبارات قانونی ها یک لحاظی اگر بخونی که بهترین که برسردون مادر مسابر تشویق باشه که ایشون کلان قفلتی فرمده نم نمیشن مادر مسائل حیرت اعتبارات و حالته ای که این اعتبارت که بعضی این محط ملازمه ای بخش سوم هم هم مرتبه تنجد که شامل قبض اوزن و صدر مدیه همه میشه تاروز مرتبه تارو مرتبه به استمایت یا به زبورات که در فرق اسلامی به خصوص این زبورات داره. مرحلی پنجام من یک سری عباسی که مرحول مقام امتصال میشه به نظر همون پنج بخش این نحر از این نحریست که ایشان به اصطلاح مطرح فرمونده این راجع این قسمت کلامی ایشان بعد ایشان متعرض اشاره اکیمالی این بخش رو به نحر پسیل در محل و که شهر رساله شاگه به من موشه من مواشته که یعنی مثلا در جایی که شکل در تکلیفه فقط اساس برای جایی شکنه بینه، جایی که شکل در تکلیف باشه فرد اساطو برای جایی نمیشه به در اساطو برای آمد نخیشون پنشیش ها اصف و همجور ازم بودن اصف و خایده و که و خایده و خایده در خایده این در ازم من این شیش داره ازم و جواب هم داده خود ایشان که ایده از در شباهات موضوعیه میان سبب به اصول نداره شباهات گفت میان ایشان در یکیش به اون تاره که از فردیم والا چون مرمو مستاد که شده ما یه به سر تحرزیشان چون از که اگر در اتحارت یک شیع بکنیم به نمو باقی به نمو جاری ظ از سریم اصاد و یک دیگه واحد بیشتر نداره اون دیگه منحصر در بقایت عمار و ساباتی. در اون دیگه واحدم تبدیر کلوشه نظیفه این کلوشه این و ما تبیر نداریم ولی در وساقه محبوب ساقه ساله شیطقه راموی قنطس الله با بروب به تحاره به حتی, حتی این آلم از سر خود در شاید، سه از این اساس آره از کلمات اینکه منو را قرر آمیلی شد بعد ما اساس و به معنای این که در روایت ما لفظ تار باشه نداریم از موجود شيء این نقیب حتی تعدمه انه و قدران و روایت هم یکی تعدد نداره و اونم از امار ساباتی فتحی از خود شیعه اصناعشلی نداریم از خود ماها از... مثل زرارو و محمد ما این بزرگان هم نداریم منحسر به همین وقت واقعید هست آقای بعد و دیدم مرمومه آیه آشتیه نام نکنه بعض محققی این در شبهات و حکمیه اجباره نمیشه اسمش نمیشته خب این شبه هست این, هست. این شبه هست. چون کلوش این نظیف این ندیف چرا احساس میکنه که به موضوعات خارجی بیشتر شبیه خیلی میز مثلا در این اما این چیزی که در تهارت شک بکنید مثل با الان آن حیوان متورده بین حیوانه نجسل این و طاهر ال این انصافا کندشه این نظیف شموعش برای شبارت خیلی روشن نیست خب اگه گفتیم نیست که دیگه میشه در برام اونام که موضوعی هستن یه ارجاع دیگه ارجاع داده به برام من بگید وارده کلامی که هم نمیشم اینه که چرا اساس و تهاده به آقایان در اینجا در اصول بخص نشده؟ مهموم استاد متعرضه شدن ایشون فهمدن نقطه اینه در صفحه دیوی سه ایشون در اون اصولی که در بحر فوائد استفارده فقط اساس و تهاده متعرضه شده فهمدن این که اساس و تهاده نوردن خاطر اینکه اساس و در اشتباه کنیم مسلم جای بخص نده در ازده نوردنش ایشون نظرش اینه لا عدم گوه خلاف این ها این اصول صابت در در خلاف فیهات ایشون برای همین جد در اصول متعبز نشوند چون قطعی اصابتان ظاهرن مرادیشون از قطعی اصابترش با تو قطعیه در شبا توکنیش رو چند نیست چی که در شبا که های هم که برزد محققه اسم واریدن که اساس و جاری نمیشه، انسان هم به نظر من اینجور باشه من خودم مراجعه تو این مسئله نکردم و فکر نمیکنم خب بلاخلاف باشه و وغلی باشه و اجماعی باشه باسن که دلیلش یک حدیث واهدیه و از خط فتحی هم هست از علمای ما اصلا روایت فقیر قبول نمی‌کنن روایت امر سوابق رو میخر خاطر اختلاف مذهب نمیشه من نمی‌دونم بلاخلاف من خود من روشن نیست این وجه عربه حالا وجوهی که ذکر شده برای خروج اصالت تار نه وجه دوگون این از که لکون ها خارجت من علم حصول و داخلت هم که علم فق داخل در علم فق باشه البته معرومه استاد ایک خلاسات اولی دارن که حالا نمیخانه واردون شما خودش رو مراجعه کنه. این را ایشون از کپایه نعمل میکنن که از علم و اصول نیست من اندالورد دردم تر روز اندالما اعتراض ها فی جمعی اقوام فقه چون اساس و در تمام فقه جایی میکنید اساس و تاره فرمیشه ولیدو در اصول بحثش میکنن بعد ایشون رد کردن لعن من نیزان که کنون مسئله اصولیتن یه انتقل نتیجت ها که طریق استنباط و حکر فرقی از که این مقداری این تحبیر دقیق نیست تقلیق نتیجت ها مبو مستاش صرفه <تصفيق> دیویست و نورد که این شاقی که من دارم لن من میزان که کنه مسئله اصولیته و انتقل نتیجت ها که طریق استنباط و حکر این مسئله رو سابقه هم در همین اول بخصه به حساب حجش و امارات مفرس شدیم خب در قصد از خیلی دقیق نیست عبارت ایشان خیلی؟ مراد ایشان واضحه اون مراد ایشان چه دقیق نیست بخیل دقیقش این المثلات اصولیه و این تحبیلیست مرمون نایینی داره مرمون نایینی معیار در مسئلات اصولی این قرار دار انتقل ندیجه ها کبرار این کبرار ایشون انجاستن فیقیاس استنتاج حکم شرعی الفرعی الکلی شون روشن از حکم فرقی همین مده دارشن انتقر نتیجه تا آفی طریق استنبال داره حکم فرقی این بریش هر جز رو در این باره نه اینکه در است... طریق استنبال قرار بگیر کبرا بارد باشه نه سقرا بس سقرا اصولی نیست کبرا بعدم حکم شرعی باشه شرعی نباشه مثل اقام عقلی و فیزیک و اینها فرعی فرعی باشه اصولی نباشه مراد آیت اصولی در اینجا یعنی اصول عقاید کلی باشه جزئی نباشه چون اگه جزئی باشه قاعده فقهی میشه و لذا مرحوم نائینی فارغ به قاعده فقهی و مسئله اصولی رو این میگه هر دو کبرا واقع میشن خود در این کبرا در قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی لیکن قاعده فقی نتیجه حکم فرقی جزئیه مسئله اصولی نتیجه حکم شرعی فرقی کنیه مثلا من ملک شیعه ملک اقراره به این قاعده فقیه چرا؟ شما میگیم زید مالک این کتاب میگه کتاب پاکه پس ما میگیم پاکه این کتاب پاکه این نتیجه است این حکم شرعی فرقی جزئی شد. همه وقتی گفتیم خبر واضح حجتی بگیم خبر وارد آمد خبر سعید براید که لحمال ارنب حرام و خبر مثلا صحیح حجت و اخبار صحیح حجت فلحمال ارنب حرام و. این لحمال ارنب حرام و حکم و شرعی و فرعی و کلی این از کلمات استاد چند بار که تکرار کردن میزان توی مسئله اصولیتن انتها ان نتیجه تو فی تریل استنباز لقح کم این اباد می چی بودن و از مرد نوییم میاد اونه، لکن عبارت از داره انتخاب انتها نتیجه توها فی خیاسه، فی قبران ازد، فی قبران خیاسه استنتاج شریعیه شرعیه کلی این علیه قریب معیار رو توضیح بدیم معیار در مسئله اصولی اینه. هر مسئله که نتیجهش کبرای اون قیاس قرار بگیره قیاسی که در نتیجهش اثبات یک هفته شرعی فرعی کنی با این مقدم ها این اسمش میشه مساله اصولی که اینشان ها روشن شده باشه و لایی اوترم جریان ها بی جمعی عبادت چرا لا لخرجت جمله من المبارس الاصولی ان علم اصول. لعدم اترازه های جمعی عبادفه که البحث اندلالت نهی حلال افحال عباده حلال فساد چون مثلا بحث من که آیا در عبادت در فساد میکنی آنه فیرنه ها غیر و محترد جال فی غیر عبادات غیر عبادات جالی نمیشه این زاخر اشکال از درست نمیشه ارز کردیم در اولا مثال که ایشون زده ما ارز کردیم تحریه تاریخیش رو دادیم ارز کردیم در دنیای اسلام در این ای که ما اسمش رو معارف دینی گذاشتیم مثلا فقه هست، اصول هست، تفسیر هست، کلام هست، حدیث هست رو مجموعه مجموعه معارف دینی و معارفی که دینی نیستم اما تو حوزه های ما سلو روازه شد نه هست صرف هست،, هست لغت هست من در محله خودش فوضید دادم یکی از مشکلات در دنیای عرب اینه که تدوین لغت عرب و ذوابت لغت عرب بعد از اسلامه قبل از اسلامی مثلا سریع معناست چیه این مثلا در قرن دوم شد بحث در بازتایی این در وقتی که فرقه های دینی مشخص شد این سنی بود اون شیعه بود این مقامه کلامی بود این آمدن لغت رو تنظیم کرده. لذا لغت خواهی نخواهی متأثر به و اصول و کلام و بحثه دیگه شد ما لغت عرب و زوابت عرب قبل از دنیای اسلام نداریم نه بعد از اسلام لذا اینا معارف دینی نیستن سر اما همون به معارف دینی مثلا فرصان بحثی بود سنری بود گفت هم به با برای احساب شیعه بود علاوانو شیعه بحثی اخفش متأثر علی بن خولان این شیعه شیاد بودن الباعد تفسیر سان سروج بروس این چون وضع شده بود بحث فکری قرار گرفته بود وقتی آمد تفسیر لغت کردن نه دروش کردن متاثر از افکار دینی شدند حالا دقت بکنید این علوم تاریخ داره اینطوری یه دهن از هم عامله باشه نه به این که ما دست بسته در مقابل اونها قرار بگیریم مکتوفه لعیدی به اصطلاع این علوم تاریخ دارن روابط تاریخیشون معلینه روی شاهش معلینه جدورشون معلینه بعد از پیغمبر انکرم در حقیقت اولین معارف دینی ما حتی سرپنه هم اولین معارف دینی ما دو تاست بیشتر تفسیر و فیر از صحابه و تا به تفسیر و فیر فکر خیلی زود شروع شد بزدگر. مثلا به طور کلی فکر از سالهای شد شروع شد و ها شسته فکر خیلی زود شروع شد این ادامه بدای کنابیه فصل مثلا اوزی بزرگانه شد. مثلا فقاهای صفحه مردین شما رو شست شروع شد صد سال بعد تقریبا اصول شروع شد تقریبا همراه و اصول با یه فاصله کموزیادی رجال شروع شد به حدود سالهای 160 اینا ها شروع شد فقه اصول هم سالهای 167 شروع شد مثلا قرن اول تا اواخر قرن دوم قرن فقه هاست از قرن دوگم اصول شروع میشه اواخر قرم دو دوم بعد از قرن سوم قرن محدثی نه. شما هرچی محدث در احرسانت ما قرم سبوم بزرگان محدثی یه تنظیم تاریخی داریم اون وقت خوب حس... خب دقیق ما الان قبل از که که فرق ادا بکنیم اصول میکنیم اما تدوین اصول اینجور نبود تدوین اصول چی شد اصول چی رو شروع شد اینجوری شروع شد که آمدن این صد سال مسائل فکری که مطرح شده هر مطلبی که دیدن در قده یک مسائل و و ساری ایست اصول. هر مطلبی دیدن تو یک جا جایی و ساری از باشن تو, تو, جا تو فرق پس ملازمه بین طهارت بین و طهارت اون درجی در بره که میگن اگه آب شاد بشین دل هم پاک بشین بی دل هم پاک اینه تو فقه بود سر این موردیه نه تو اما ملازمه بین وجوب شه و مقدمات این اوردن تو پس معیار این شد هم و این معیارونو ما الان کاملا رعایت میکنه هر جا موردی شد فقه هر جا موردی نشد اصول چرا دیگه؟ موردو میگه می که یعنی اون گرام رو گذاشت بکنه، چه فایده‌ای داره مردو گذاشت؟ واقعاً بله، تر میشه، میشه و شوف. فهم نهی در عبادت همین از خروج نهی، اینا ظهورات ظغورات ظهورات ضرورت لغزیدن اختصاص به یک مورد نداره. در بله اگر یک جای یک ظهور لحظی موردی بود این رو از اصول خارج سرم شما الان کلمه مثلا ان رو بحث نمیکن چرا بحث نمیکن؟ آیا لفظ ان درست بر وجود میکنه سیره افعلو بحث میکنید اما لفظ ان چون در لغت عربی هم ان <تص> هم درست بر وجود میکنه المؤمنون عندهم شروط یعنی یک علاوه مفاضه المؤمنون مؤمنون اند یعنی یک کلمه اند هم دلالت نکنه چون این تو بس چون این موردی بود و بیشتر آمدن اینو تو فقه اصلا مطرح نکردن تو لغت مطرح گردن و مثلا فرسو وا دلالت وا وا هم در فقه تحصیل داشت فا هم تحصیل داشت صنبه هم تحصیل من حرف کردم تا یه مدتی بیان این مفردات دیگه در فقه معاصر در کتب و اصول ما هست که تو علامه داره،, داره علامه سنیا داره, داره، داره. بحث لغاتش اینجوری ببین. واظ را داره میکنه یا فاضل زاده تاکید میکنه. صمه داره تاکید. اینا تو اصول. اینا البته اینها هم که اصول تغییر شد، مثلا اینا تاثیر در فقه داره. در اصول داره بیا تو اصول و نذاب بحث زواهر که مطرح شد به خاطر تص... تحصیلی که بحث زواهر توی مواحث فرهی داشت و محسوسا محسوسا در بخش‌های های یک مقدار از بخش‌های های در مسئولیت فعل لغت قرار گره مثل کلمه سعید خب سعیدن در که خصیل داره آیا سعید شامل رم و ریگ و چیزا روی یا فقط خاطه ترابه این ها تو فقط تأثیر بره این ها رو بردن توی اصول توی لغت یک بخش لغت رو خوب درقت بکنید این ها موادثی نیست که حالا بگیم مثلا در به جبه یه به رسول الله این بناشو شد بناشو دییم که یک بخش موادث دغوی رو که عادتاً دغویی متعرض نشدن البته برها سرکی ها متعرض شدن. این مقدار شد یک مقدار مواحظ لغت رو که هم سرایان داشت و هم متعرض داشت و اینو اردن توی اصول آزتا خود دقیقه کنید که مربوط به حیاات بود اردن توی اصول چون این ثابت شد که در لغت عربی خود دقیقه کنید همچنان که مواحظ معنا دارن سعید معنی داره ماه داره حیات هم معنی داره اصلاً تو لغت عربی حیعت معنی داره سه جور حیعت هم وجود داشت حیات افرادی مثل مشتن حیات ترکیبی ناقص مثل وست مثل مشتن رو تو مقدمات وست رو, رو, رو که یک حیعت ترکیبی ناقص تو بست محایی رو خوب لغت رو یه مقدار دهن کاشیدیه هر یعنی تنزیل پیدا نکرد. برلا طرح ما تو بحث این بود که بیا مباحث زوائفی مقدار خر و سامان بدیم منظمش بگو ببینیم. یه بحثه یه جزالتن بحث مشتق رو بنا بر مشروط مقدمات اصول دادن مرحوم آلفونس نیسوالی گفتو خود اصول روش رو اولی بحث اصول گفت فرق بین مشتق و صيغه فعل نمی‌کنه. خب میدون در نحوی مشتق یک هیئت افرادیه سی اف آل ترکیبی تامه پس حیات اخراجی داریم، حیات ترکیبی ناقص داریم. چون این مطلب یک نکته مهمیه. خوب دکتر مانت کوثر مفهوم وضوح از کردی. کردیم ترک دم بعد از بزرگان هم شکلی زرافه تر نقص نشده. در حیات دست مفهوم مفهوم وضوح بیایم برمیگرده که این هیئت ترکیبی ناقص، هیئت ترکیبی ناقص مفادش چیه؟ مثلا رجلان آلمان این مفادش چیه؟ رجلان فاسبان این مفادش چیه؟ فقط مفاده اینه یا ترکیبی ناقض فقط تعلق وقت اساسی با هم دارن یا سلبن با هم دارن اگر سلبن شد میشه مفهوم نشد میشه بردمدون یعنی اگه گفتیم جا اچنا رجالان فاس آلمان نسبت خود قصی رجالان آلمان این تو رجل آله این حیعت ترکیبی ناغذ چه کار می در لغت عربی حیاعت معنا دارن این یک نکته. ای. تحلیل معانی حیاعت افتاد با عنوان و حسول فرض نمی کنه رو بیشتر سپیار گذشته و تو نه لغت از یک مقدار از حیاعت رو در صرف عمر زنده تحیلیت ما به افتعال افتعال یک صرف معناش چیه؟ اکرم رو اینا رو بودن تو سرف. اما بیشتر اون حیاهاتی که جمعه خوب دقیق هم لغوی داشت و هم جمعه قانونی و فقیدی این توی اصول آورد بحث اقتصاده تو اصول نه آورد چون اقتصاده لغوی صرفه اقتصاده لغوی صرفه اصفراجه. این تو فقید تاثیر داره خود برای شما توی استنبال فقید تذکیر بکنه این تو صرف آوردن توی یه لغت آورده همه موردی هم, هم توی فقه برسی کرده اگه توی یک روایت مثلا همین استوطنه همه ما کلمه وطنه را از کردیم کلمه وطن ما در کل روایات تو سلاطه مسافر وطن نداریم مثلا این که الان بگم وطن هناش چیه مثلا غرفی مثلا ما وطن نداریم کلا تو سلاطه مسافر لفظ وطن نداریم یک دانه روایت از هم هست منحصره استوطنه هم تا اشخو این روهای کوئی گرفتن برون کلن برون رفتن شدید من میراد تو باردم. خب این بحث میاد که این استوطنه که با به استفعاله چه معنا میگه؟ پس این تأثیر داره تو فرم اما این موردی و از دائره فرم هم خارج میشه لغوی دقت بکنیم اما سیغه افعال لغوی و جلبه قانونی داره آیا وجود در میدید یا نه پس بحث حیاات رو روشن شد مثلا هیئت ناقص ترکیبی ناقص که مثلا بحث و توصیف باشه این بحث لغوی هم داره اما جنبه قانونی هم داره جنبه قانونی چیه آیا این ترکیب رجلن آلمن فقط مفاضه ثبوت ارتباط ثبوتی یا ارتباط تالی هم داره یعنی اگر عالم نبود اون حکم تصرف میکنه آیا حدود این تحیل تا کجاست؟ این از می شد اصول پس اصول بحث از حیات شد وزن نیشه این بحث لغمیه لیکن به خاطر تأثیر او در قانون یا در فهم مواحص مفردات رو در اصول متعرض نشده موارد مواحص رو در اصول سریع ما, ما میکنه. با حروف اینا تو اصول نی آورده. پس دروم استاد میگن میزان نه میزان همین نقطه است که اون اونو ما اعتبار کنیم چون که قیاسه یا درومه ولی کلامی نیست برهان و قیاس اینا فلان این اینا کلمه دقیقی نیست پس معیار اینه خود قکر هر جا موردی بود تو فرق گذاشتن این چیزیه که از سالهای 170 سال تا سال سال شروع شد دیگه این چیزی نمونه که امروز ما ببینیم هر جا موردی بود در فکر گذاشتن هر جا بیش از یک مورد بود تو اصول آورده اساس تاره توی فکر نوشتن اساس العباده اساتل درائر تو اصول آورده چون اساس تاره موردی بود در خصوص تاره حالا اگر قائل به جریانش هم باشین که از دست آورده پس بنابراین اشکالی که استاد فرمودن وارد نیست موضوع همین که ما در همون بحث نهی در عبادات اصلا افراد متعددان بعد از مدتی مواجهه با مواضیعی که مقالات شدن اجمالا به این مطلب شدن ما توی بحث نه در عبادات و عبادات همه جا متعرض شدیم گفتیم انصافا ولی در اصول آمدن بحث کردن که نهی در معاملات در ظرافت میکنه وجود فساد میکنیم میکنی در عبادات. اما انصاف قضیه این بحث تمام نیست یعنی این بحث نهی در این صورتی که اصول مطرح کردن ما نیست نقص هندیش اونجا از گردید نقطه فنیش این بود که ما در مجموعه ادله خودمون چه در کتاب و چه در سنت در روایات مجموعه ادله خودمون اون چه که نه داریم همه جا به صیغه تفعل نیست اینا تو اصول لا رو بحث کردن ما داریم صدرالبيت ادالو ضربه امضار و نیست لا نیست ما داریم که المومنون اند شروطه اند رو داریم ما داریم ولا تعظم و اقدتن نکاح حتی یبلغ کتاب و عجاله لذا صحیح در مقام این است که اصولاً این اصول ما این بحث ما این برای کل فقه کارایی نداره آلات و با علم آلی و نستانو نه نمیتونه. چون همه جای خوب دفن کنیم؟ آیات برای برایات ما لا تفعه بیدیم اگر همه جا لا تفعه بودیم مطلب به درد میخون لذا ممکن از دردشایش مثل لا تعظم و اقضا تن نخوا بگیم اگر در ایام از و فرمت عبدی میاره از کلمه لا تعظم بسن این جو سن این میشه موردی میشه فرقه. لذا این بحث لا دلالت به لالت برقصاد میکنه یا نمیکنه؟ این یک محدوده معین داره در اونجای کلیسان روحت ما لا تفعله مثلا علیکم امه ها همه جا لا لا ترکه ها و... ما نگه آبا. این در قرآن لا ترکه ها موقع در نکاح هم تو... یک نواف نیست دقیقه فرمیدید چون یک نواف نیست این بحث حسولیشون فقط اما ما لا تعظمون داریم اگر بحث بکنیم که عرض یا آمه ادموجه و قرمت عرضی میشه میشه از کلم لا تعظم چون جانه نفی عرض میکرده وقتی نفی عرض میکرد یعنی علال اول دیگه عظیمان از میاد. این رو اسمشی میداریم موردی این اسمش موردیه هر جا موردی شد خیل هر جا غیر موردی شد اصول. چون اینجا برموستاد یه رو دا شهر دارن من شد روشا در رو شهر بودن پس مطلب اینه که این وجهه تاریخی داره علم تعبین این علوم تعبدیان اعتباری نی علوم علوم نیستن و نکته داره اصالت و تهار فقط تو بحث طهارت کاربردش داره تو غیرش این وجه دوم بود که یک مناوشه پرد داد یک وجه سوم هم ایشون فرما قضیه تغییر که وجه این که اساسا را ذکر نکردن چون طهارت یک امر واقعی است لذا هر جا که شوربه بشه نذادی ای یعنی شوربه کردیم این بیرون تعارض واقعی هستند بعد ایشون مفصلن وارد بحث شدن حدود بیش از یک صفحه در وارد این چون خود اصل تخیل و مساله واده واقعی یه جوابش اینا یکیش به خودش هستند به جوابش هست علیه یا حال یا این شوراو دومیشم اجمالا بحث این سهم جا چون من نمیخوام زیاد این راه سوم کیو سبب هم ایشون مناقشه کرده و ربون نکردن راه چهارم من یه بیشتر نظرم به این بود راه چهارم رو بیشتر نقطه فنی اینه این راه ها خیلی نقطه فنی نیست اون موردی شامل نقطه فنی این واقعی موقعیه این فنی نقطه فنی مردم های آشیانی از مجلس درس شیخ منشون خیلی مکرر نگه در مجلس درس ایشون فرمودن ایشون در بهران از مجلس درست شیخ انسایی نه رو فرمانه که مرجع این که اصاد و تهار رو بحث نکردیم چون این اصاد و تهار مرجعش یک احکام تکلیفیه مثلا گفت نجهت می یکی بل اجتناب هم نجهت لا توسلفی. لذا اگر شک کردیم تهاره از دنه میگیم یکی بل اجتناب لا نه من میشه تاهر یومنه همون از سراتفی لا یومنه همون از سراتفی میشه تاهر و اینطور که ایشان توضیح دادن ارجاع شدن به معنی شیخ در این که اساس و تهاره دو افکام وضعی و افکام وضعی خودشون جعل مستقل ندارن انتظار میشن از افکام تکلیفی ایشون مرمون شش نقطه رو این قرار داده پس ما چیزی به نام اساس و تهاره نداریم به تقریب این بحثا قانونیه حسابا خیلی وکیفه این بحثا رو همیشه داشته باشه خیلی مفیده ما چیزیدیده نام اصالت تارن در اگر همه اصالت براید توسطیب چرا؟ چون وقتی گفتیم یک شیعه تاهره انده اجومد اشتناب هست نزیده یک جومد اشتناب پس اگر شک کردیم تاهره از نزید این شک میکنیم یک جومد اشتناب هم دو اجومد اشتناب اصال اصال براید هم و جومد اشتناب وقتی اصال برا پس مرگون شیخ از سال ستاره جز احکام وضعی نیدونه و احکام وضعی یا مطلقا یا این قبیلش اینا قابل جهر مستقل نیستن و لذا حتی این من یه توضیح حلق کردم وقتی ما در اصطلاح قانونی خوب دقیق کنیم وقتی ما میگیم در اصطلاح قانونی قابل جهر نیست مراد ما مشکل تعبیری نیست مشکل ادبیات نیست اینو خوب دقت کنم این یک بحث قانونی است مثلا احکام وضعی فی ها قابل جعل نیستند نه اینکه مشکل تعبیری هست مشکل لفظی حتی ممکنه به لحاظ جلختی چند جل بکنه اما میگیم این مشکل قانونی داره مثلا جزئیت جزئیت جزء احکام وضعی است این اصلا قابل جعل نیست یعنی چه قابل جهل نیست خوب دقت کنید یعنی یک مشکل قانونی داره نه مشکل تعبیری یعنی اگر آمد رو یا آیال مکلل جعل و صورتی جزء امنه سلا جعل تو فاتحه کتاب جزء امنه بگه این تعبیر رو میکنه اما این جلی اون که که میگن احکام وضعی قابل اشتباه نشه من از من نمیسته از آبادی دور اشتار تعبیر این جلت و صورتی جز امنه نه بحث تعبیری نیست وقت وقت واقعی واقع را در اینجا قانون در واقع قانونی میگن جزئیت در واقع قانونی قابل جعل نیست یعنی چه قابل جعل نیست یعنی اگر اقامت گفت علمی جعل تو صورت جز امن اصلا یعنی یا ایوه المخلف علیه که به صلات معلفت من اصلا مرجش کل در واقع اونی که جعل قانونی به شعلق میگیره کله نمازی که دارای صوره و رکوع و سجود و هم داغره هم چیز این این جلب او تعلق گرسه خود جزئیت قابل تعلق جلبی یعنی حتی اگر در مقام تعبیر یا به اصطلاف فارسی و ادبیات قانونیش آمد گفت انی جلت و صورت جزئن من از یعنی انت معمور به صلاف معلفت من رکوع و سجود و صورت و برای داخلیم در حقیقت امر به کل می خود جزئیات چی نیست روو من قابل چاله خوده قابل چاله چون اجزا با هم یک نحوه ارتباط میده گاهی ارتباط بین اجزا مختلف در نظر می گیره قابل چاله مثلا در این حالت دیگه جزئیت جزئیت این دیگه جزئیات نداره جزئیات یعنی الان تکلیف شما شما الان فراموش کنه هم دیگه خونه رفتین الان تکلیف شما نماز بدونه هم ده مفاده چیه نه؟ اونه که چرا رو داشتن؟ تو رو رو رو رو رو رو شما میکن نماز با دیرم میان بیگه چون تکلیف اونه با تکلیف اینجوری آمده در حالی که شما نماز بدونه بکنیم مطلقاً تکلیف نداره چه استرار باشونه همون تکلیف نداره لذا اگر شما اینجا روپنه روپنیش باز به کل برمیگرده میتونه کل رو در حالات مکلف در نظر بگیره روشن شد چون شما ازش پس بنابراین این این نمی در روشن شد پس بنابراین این اینی که ما میگیم احکام وضعی انتزاهی از شعر مروشد از این که با, با ایشون انتزاع شدی این مراد این است که احکام وضعی طبیعت قانونیشون یک چوریه که دیگر تج... یعنی اصلا قانونا به اونها تعلق نمی جنب به جزئیت تعلق نمیگیره به شرکیت تعلق نمیگرد حتی اگر گفت من این جز قرار دارم یعنی تو مکلفه به نماز در جزئی به نمازی که این و این و این توش هست خود جزئیت با عنوانه ها این متعلق جنبی و لذا ای که مثلا مخالفت باشه ایفت کردن در افتان وضعی ایمان هستشون اینه که اینطور نیست که افتان وضعی همه از این امامت، نبوت، رسالت. وجیه وجیه قابل جعل خود منچه انتظار داشته باشه و این مثل رو از طرف من چون مرحوم اشتهی شاید شاگردی ایشونه خیلی با این میگین شیخ قابل باشه که طهارت خودش قابل جعل می عجیب اون مافومی میگه طهارت قابل جعل می اینه که از نامان السماء ما الطهور را قابل جعل می یعنی لاجوی ولا استنا یعنی خیلی فهمه بغییه خیلی واقعا به نظر من کلوشه النذیف این در حقیقت یک نوع بیان ادبی است بیان قانونی نیست معنیش اینه دیگه وقتی بگیم در مقام تعبیری مشکل نداره قانونی مثلا کلوشه النذیف این یک بیان ادبی است چون من هرگز کردم همیشه بین بیان ادبی با بیان قانونی فرق هست نقطه داره طبق تصامور شعر کلوشه النذیف این یک بیان قانونی اینه این کلوشه این لایجه بل اجتناب هم مراد جدیونه این نظیف اشاره به احکام اینه کلوشه این, این یو سلیتی اشاره به حکمه نه کلوشه این نظیف جل تهارت برای شیعه باید و خیلی خلاف داره انصافا ما افاده شیخ رحمه الله در اینجا بسیار مست چون اولا خود تهارت صحیحه جز احکام جلیز جل. صحیحه ما این رو قبول داریم که طهارت باعث تمام احکام احکام وضعی در حقیقت مشتملند نحوه اندباش بر احکامی وقتی میگیم این کتاب ملکه یعنی میتونید بارش تصرف کنی یعنی میتونید بخونی یعنی میتونید ببخشی یعنی میتونید بفروشی درست توش هست اما از یک طرف دیگه در این نکته قانونی داره میاد تو نکته قانونی اون معنای اصلی رو در نظر میگیره همون معنای اصلی رو با یک معنای واسعی میاد اعتبار قانونی می‌کنه مشکل نداره نمیخواد ریزی ریزی رو در نظر بگیره خوب دقت بکنید این یکی از نکات مهم تفسیر قانونیه که نباید بهش توجه بشه من سال‌ها هم متعرض شدم بعضی اینشاره باز متعرض بشین وقتی میگه این ملک توست خوب دقت بکنید با تفسیر قانونی میشه یا نشه مشخصه یعنی میتونی درش تصرف بکنی میتونی مطرف بکنی میتونی بفرشی میتونی می اطلافش بکنی اصلا معنی ملک اینه ملک تو یعنی این که میگی ملک تو منحل میشه به یک در ده, ده احکام یا نه خود کلمی ملک خود دقت کنیم در اصل لوقت عرب کانه به ملکی به معنی است ریشه ملک سیتره و از کل این کنال در اون عوائل در زندگی بشر مرک رو در اون سیطره ظاهری بکردون واسه این کتاب در درست نبلسش میگه و میگونه های یک نوع تکاملی پیدا شد این دردهای دردی همونو تو لبنان داره تو نزد داره پسه توی هجاز داره توی کشور. اون خونه دور هم نهی در دست دردس اونیست این تصرامی بوده که بعضا یا مرجعی امتصار به از احکام تکلیفی یا با فکر کنید خیلی اثر داره یا مرجعی تصرف رو به اون اون رو توسعه داده همون رو اعتبار کرده ملک یعنی سیتره. این سیطره کاره توسعه کنیم یعنی سیطره رو توسعه داده یه یک معنای عرفی داره اونی که ارسان خود ها که در مقابل نجیس ما تشمینه زمنون آیا هایا وقتی گفت کلوشه انطاهر انزم نامن از سما ما انتهورا همون این دقت کرد؟ این در آثار انشاءاله تو برای از اشتغال از خواهی کرد توی اجرا اصول مثلا در از مقامات این فرمید تفسیرش شما بهش نیاز دارید شما تفسیلتون از کلمیای کلوشه نزیف چیه؟ اگر حرف مرموم هایشتیانه ای که ظاهره ایش میگه سه رست اهل افتلاح از اینکه طبق تصور مرمومی که کلوشه که این ندیم کلوشه ای این لایج نصب نه سه خستالاته نه جعل تهارهد نه جعل نیست نه سه جزئیته یک کمه دو سه دقیقه رخ گذر چون مطلب لکیشی بود من شدن تفصیل شه از کل شیء انصاهر اینه ولی که انصافا من سخت میکنم با ارتکازات و قانون ما نمی شده کلوشه ای ندید جرمان فهارته از قبیل هجید، از قبیل ولایت، از قبیل امارت، از قبیل امام جب... اینی جاهره که لناس اماما نه اینکه به لحاظ آثاره کل شیء ندید، کل شیء انطاهر، کل شیء انحرار این به لحاظ خود حلیته و این فرمش اینه که میاد در مفهوم تهارت تصرف میکنه چرا این کاره میکنه؟ که هم یک که در داره رو تهارت مثل لاسالات علاقه سمون هم میخواد زمینه آواده میکنه که بعدما هرچی که من گوزن تهارت در شرطه که کلوشه این لکه تایی یعنی دیگه با مباده که که تصبره که داد کلوشه سایی رو هزید از پنج ته حکم تضایید حرف قانون دیگه نمی‌کنه. همه ما در کُل چیز به اون پنج به اونها نظر داره. هر خوب میگن که الهیوم و غیام، رعایت پاکی مثلا رو باید با پاکی انجام بدید. این با مثال. فرض نگه مسجد کوفه رفتین باید با وضو باشیم من با مثال فرض این کُل لکه نزدیک نزیب میگیره. با لباس پاک کوفه بشینید. این با مثال. در شبیه ما اصطلاح اموزه اصول ما حکومت این شبیه حکومته نه این که تنشه حکمی که در رواده آنها و اون تنشه داد به هر حکمی که بعد رو عنوان تهارت مخواد بیاد این یک نوع تصفیل در موضوع در واقع از به نظر ما از این تهارت خوابی نشه و سر این که اصلاحات تهارت هم زید نکردن مانا تشبیه کلام میکنیشون از کفایه ناخرده شبیه اون کلام نقطه پنیش این است که بحث از موردی تو نقید در عبادت هم یک لفتش موردی باشه فخره هیچ فرمان میکنه هر جا بحث موردی شد فخره هر جا موردی نشد اصوله این چهار نقطه بود در زهر از ما در خلال بینبهانه چند تا مصدر ادیدی کرده هم اثبات کردیم که نقاط ظرافت هایی در اصول هست، کنوبون چیز بار filt